افسانه یک کچل ها داستان زیبا به قلم حمیدرضا خزایی ارائه شده از کانال هزار افسان مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده ماه بانو فند یکی بود یکی نبود. غیر از خدا هیچ کس نبود. یه روز دختر پادشاه میخواست به حمام بره. کچل افسانه ما هم داشت می سر زمین. که یهو چشمش به دختر پادشاه افتاد و یک دل نه صد دل آشقش شد. شب که به خونه اومد به مادرش گفت باید برام بری خواستگاری مادرش گفت خواستگاری کی ننیجان؟ گچر گفت خاستگاری دختر پادشاه. مادرش گفت نه, نه تو کجا دختر پادشاه رو دیدی؟ حالا گیریم که رفتم. اصلا اون رو به تو نمیدن. چی فکر کردی با خودت؟ گچر گفت نمیدونم اگه رفتی که هیچ. اگه نرفتی من از این بلایت میذارم و میرم. انقدر گفت و تهدید کرد تا پیرزن بیچاره قبول کرد. بنده خدا هر روز صبح اول آفتاب میرفت در خونه پادشاه مینشست تا غروب آفتاب چون با روش نمیشد بره خواستگاری دختر پادشاه با خودش میگفت برم به پادشاه چی بگم آخه من کی هستم که برم دختر پادشاه رو برای پسری کچلم پاستگاری کنم اینقدر رفت و رفت تا 40 روز گذشت روز 41 یکم پادشاه با خودش فکر کرد این پیرزن چیکار داره که هر روز صبح اونجا میشینه و هر غروب آفتاب به خونش بر برمیگرده به سربازاش نوکراش گفت یکی تون بره این پیرزن رو بیاره اینجا ببینم چیکار داره گفتند چشم قبل یاله رفتند دو پیرزن رو آوردن. پیرزن ازش پرسید مادر جان چی کار داری؟ برای چی چه روزه که اینجا میایی میشینی و گروه آفتاب که میشه بلند میشی میری پیرزن بیچاره گفت قبلی عالم روم نمیشه پادشا پرسید آخه برای چی رود نمیشه مادر بگو هرچی باشه قول میدم براورده کنم پیرزن گفت از خدا که پنهون نیست قبلی عالم از شما چه پنهون؟ این پسر بیچاری من دختر شما رو دیده و یه دل نه صد دل عاشقش شده حالا از آن خواسته که بیام اینجا و اون رو از شما خواستگاری کنم بادشا خندیده گفت اینکه که قصه ای نداره به پسرت بگو اگه چلفند رو یاد بگیره بیاد اینجا تا دخترم رو بهش بدم کچل که این رو شنید دیگه نزش کار به فردا برسه همون روز و شکولا کرد و رفت در خونه چلفند مرام چلفند این بود که هر کی میخواد شاگردش بشه اون رو برای چهر روز به سیاه چال میداخت و روزی مغز بادوم براش پرت میکرد پایین روز چهلم سر سیاه چال میومد. اگر مرده بود که هیچ اگر نمرده بود بهانه ای می و از خونش بیرونش میکرد. روزی که کچل در خونه چلفند رو زد دختر چلفند در خونه رو به روی کچل باز کرد و مهر اون به دل دختر افتاد. کچل رو بردن و تو سیاهچال خونه اینداختند تا بعد از چه روز ببینن که میتونه شاگرد اون بشه یا نه. دختر چلفند از کار باباش با خبر بود. تو این جه روز هر روز به دیدن کچل میرفت و براش غذا میبرد و هر روز یه وردی رو بهش یاد میداد روز آخر به کچل گفت فردا میان که صداد کنن و از اینجا بیرونت کنن هر چی صداد کردن هرچی داد و بیداد کردن جواب نده آخر سر یه ناله ضعیفی بکن تا بهت شک نکنن وقتی اومدن و کچل رو صدا کردن، کچل انگار که مرده باشه، هیچ صدایی ازش نمی مند. در آخر، یه ناله ضعیفی کرد که انگار دم مرگه. کچل و از سیاچال بالا کشیدن. چلفن یه نگاهی به قد و بالای کچل کرد و دید همونجوری که روز اول سراحال به چار رفته، الانم بعد از چه روز همینطوری از چاه بالا اومده و خیلی سراحاله، به کچل گفت تو به درد این کار نمیخوری. کچل گفت برای چی؟ برای چی جناب چلفن؟ چلفن جوابشو نداده از خونه بیرونش کرد. کچل شاد و شنگول به خونش برگشت. اون روز خودش رو به زمین زد و شد یک خر سفید به مادرش گفت منو ببر بازارو بفروش اما یادت باشه افسارمو نفروشی پیرزن همین کار رو کرد وقتی برگشت نگاه کرد دید کچل تو خونه نشسته و داره و ماست میخوره کچل فردا خودش رو به زمین زد و تبدیل به اسب سفیدی شد هر روز یه چارپایی میشد و به مادرش میگفت منو ببر و بفروش تا اینکه خبر به چلفند رسید که پیرزنی هر روز به بازار میاد و یه چارپا میفروشه چلفند اومد که یه خبری بگیره و ببینه که این موضوع از کجا میخوره وقتی اومد دید دید بله پیرزنی افزار شطوری رو گرفته و داره تو بازار میچرخونه چلفند به شطور نگاه کرد و کچل و شناخت رفت جلو و به مادر گفت مادر جان شطورت چنده؟ مادر گفت صد تومن چلفند پول رو داد و افسار شطور رو گرفت پیرزن گفت وایزا افسار شطور رو نمی فروشم گفت شطوره بدون افسار رو چیجوری ببرم خونه؟ بیا اینم صد تومن دیگه که یه هایی پیرزن خام شد پول رو گرفت و شطور رو با افسار تحویل چلفند داد. چلفند شطور رو سوار شد و با زنجیر به شطور میزد. شطور دردش می اومد و همچنان به سمت خونه چلفند میتاخت. چلفند شطر رو به در خونه بست و دخترشو صدا زد. دختر از خونه بیرون اومد و گفت: "بله پدر جان." گفت: "چاغور رو بردار بیار." دختر نگاهی به شطور اینداخت و گچل و شناخت. دوید تو خونه و تمام چاغوها رو توی چاه ریخت چلفند توی حیات داد و بیداد میکرد پس چیکار میکنی دختر دختر دست خالی اومد و گفت چاغوا نیست چلفند که خیلی عصبانی شده بود دوی تو خونه که یه چاقوی رو خودش پیدا کنه. دختر تندی تنا به زانوی شطور رو پاره کرد که شطور خودش رو به زمین زد و تبدیل به یک کبوتر شد و پرزد به آسمون. چلفند دوید بیرون نگاه کرد، دید که شطور نیست و یک کبوتر توی آسمون پرواز میکنه. چلفن سری خودش رو به زمین زد و خودش رو تبدیل به یک کبوتر بزرگ کرد و به دنبال اون کبوتر. انقدر دنبالش کرد توی آسمون تا کچل که تبدیل به کبوتر شده بود، خودش رو به قصر پادشاه رسوند و از لای روزنه سر خودش رو داخل قصر اندخت و تبدیل به دست گلی شد در گریبان پادشاه. چلفند تبدیل به قلندری شد و در درگاه پادشاه ایستاد و هی میگفت هو یا من هو. پادشاه گفت درویش بیا اینجا ببینم. بردنش پیش پادشاه. پادشاه گفت ای گلندر چه میخواهی؟ درویش گفت: من گل پادشاه رو میخوام. پادشاه غضبناک شد و دست گل رو به زمین زد که یهو دست گل تبدیل به مشتی خشخاش شد و روی زمین ریخت. چل خودش رو تبدیل به مرغی کرد با چهل تا جوجه و شروع کردند به چیدن خشخاشها. یکی از دونه ها که تو پاشنه کفش پادشاه مونده بود تبدیل به شغالی شد و گلوی مرغ رو گرفت و اون رو خفه کرد. شغال خودش رو به زمین زد و دوباره همون کچل شد. پادشاه از این همه هنرنمایی کچل خوشش اومده بود و بدون سوال و جواب دخترش رو به عقد کچل در آورد.